بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلاة و سلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم رب اشرح صدری و یستر لی امری و اخلال من لسانی افقه و قولی برادرهای محترم یکی از موضوعات بسیار مهم و جنجال برانگیز که زیاد در طول تاریخ مردم در از زیاد جنجال کردن و تا امروز هم بسیاری کسا که درست نفا میدن قضا و قدر است از قدیم و زمان در تاریخ قسم تصور کردن بردن که انسان اختیار داره و یا اختیار نداره آیا ما در کارهای ما اختیار داریم که کار کاره بکنیم و که ما مجبور هستیم که همه چیز رو از این خاطر در تاریخ اسلام طایفه پیدا شده نام قدریه و جبریا و یا قدریه و جبریه طایفه هایی بودن که بحثشون سر زمین بود که انسان اختیار داره و دیگهش میف اختیار نداره یکی میگه انسان مجبور است هیچ اختیار نداره هر چیزی که خداوند سرشکت گذا قسم کل کارا همهش به خداوند نسبت میدن بعضی کسا میگفتن که نه انسان اختیار داره کاملا اختیار داره و هر چیزی خب بسیار جای بحث زیاد شده امروز هم بسیاری کسا امید تصورات رو میکنند و ای فرقه هایی که برام قدریه و جبریه و یاس برامدند کلش فرقهای های گمراه هستند، باطل هستند و غلط هستند اینجا سوال پیدا میشه که چرا این مشکل اصلا ایجاد شد چرا این مشکل پیدا شد و امروز این مشکل چرا امی قسم دوام داره مشکل اساسی است که ما همیشه ای را تحکید کرده و بعضی از دوستا و بعضی از معصیلین متاسفانه سر انتقادم کردن که گفتیم برادرهای عزیز فلسفه یک علم است منطق یک علم است علم کلام یک علم است لیکن ما ای علوم نباید در علم عقیده و دین داخل کنیم اگر ما میخواییم که خدا رو بشناسیم میخواییم که پیغمبر رو بشناسیم میخواییم که در امور غیبیات احکام خداوند معلومات داشته باشیم این نباید از تصور و از فکر و از اندیشه خود او را بررسی بکنیم قرآن کتاب عقیده هست میخوایی که عقیده اسلامی داشته باشی یک مسلمان باشی تو باید یک مسلمان قرآنی باشی قرآن از این مشان رو مطالعه بکو؟ مردم در احادیث دست زدن احادیث ساختگی جور کردن در روایت ها دست زدن ساختگی بسیار زیاد است اما در چیزی که دست زدن نتانستن قرآن مشان است پس ما مجبور هستیم وقتی که میخواییم که مسلمان باشیم عقیده خود از قرآن ازی مشان بگیریم اینال جنر بحث ما کلش در قرآن باشه سوال بکنیم که آیا انسان مجبور است؟ و یا انسان اختیار داره این سوال ما رو کی باید جواب بده خود قرآن عظیم شأن پس ما از خلال آیات قرآن کل چیزی که برام در قرآن عظیم شأن بر ما توضیح داده شده که کدام مسائل به قضا میشه و کدام مسائل به قدر میشه دو پیغمبر صلی الله علیه و وسلم و صحابه کرام اونا قرآن که فاهمیدن بر ما تشریح کردن که از اینی مقصد اینی مطلب هست وقتی این مطلب خواهندیم مقصدش اینی هست و به این شکل ما کل مشکل ما رفع میشه و سوال های ما هم رفع میشه و کدام مشکل لمیداشته باشیم اول موضوعی که ما با شما سرزو بحث میکنیم موضوع قضا هست اول قضا چی مانا؟ قضا به مانای فیصل است. قضا به معنای فیسله و فیصله. را ربک یعنی فیصله نمود پروردگار تو. اینا فیصله خداوند متعال جل جلاله چند قسم است؟ دو قسم است. یکی قضای تکوینی است و یکی قضای تشریعی کوته سانگی دادار با کوته سانگی ویش کوته سانگی، کوته سانگی والا. ببخشید بدر. خب اسمی کن. امین شرطش جامودینه ولی دی دی. مرکز پخش من سری دی خب اسمی کن میری مگه؟ بله ولی بله. ولی. بله ولی آمین سرکه اول دست مرکز کتابروسیه کاملا منجرش. تا شکر بدر. از از دم از اول پوان میشوز او انتشارات سید جمهوری نیابولی اولین و بزرگترین مرکز پخش نشریه سی دی، دی وی دی، های کتاب و همجلات اسلامی در شهر کابل میباشد. اول موضوعی که ما و شما امروز بحث میکنیم موضوع قضا هست. اول قضا چی مانا؟ قضا به مانای فیصل است. قضا به منای چی است؟ فیصله. وقض ربک یعنی فیصله نمود پروردگارتون اینال فیصله خداوند مطال جل جل هو چند قسم است؟ دو قسم است یکی قضای تکوینیست و یکی قضای تشریعی اینال یکی قضای تکوینیست و یکی هم قضای تشری قضای تکوینی چیست؟ قضای تکوینی منظور است قضایی که مربوط به عالم هستی میشه قضای تشریعی چی منظور از قضای تشریعی قضایی که در قوانین خداوند متعال است در قضای تکوینی دو نقطه را باید دیاد داشته باشه که در قضای تکوینی نقش انسان چیست؟ انسان نقشش در قضای تکوینی چیست در قضای تکوینی باید بفهمیم که انسان صلاحیت ندارد انسان صلاحیت ندارد وقتی که صلاحیت نداشه حکمش چی است مسئولیت هم ندارد مسئولیت هم ندارد در قضای تکوینی یا عالم هستی انسان صلاحیت هم نداره و مسئولیت هم نداره کدام مثل مربوط به قضای تکوینی میشه که انسان صلاحیت و مسئولیت نداره اول مسئلهش ساختمان طبیعت در ساختمان طبیعت منظور ما هست ساختمان فیزیکی طبیعت ساختمان آفتاب محتاب، سیاره ها، کش... کهکشان ها اینمی جهان هستی که است ده ما انسان ها نمیتونیم که آفتاب و محتاب تغییر بودیم صلاحیت نداریم و مسئولیت هم نداریم که در روز قیامت از ما پرسان شده که چرا این آفتاب در اینجا بود و چرا محتاب در اینجا بود و چرا آفتاب چه قسم حرکت داشت محتاب چه قسم حرکت داشت زمین در دا گرد کدامش میگدی چرا در مدار خود دا یا ما صلاحیت هم نداریم که یا را تغییر بتیم و مسئولیت هم نداریم بنام در روز قیامت از ما و تو پرسار نمیشم که چرا آفتاب مثلا در افغانستان ای ساعت طلوع میکرد در امریکا ای ساعت طلوع میکرد در اروپا ای ساعت طلوع میکرد ای ساختمان طبیعت مربوط به قزا تکوینی خداوند میشه خداوند ایر اینه میخسته خلق کرده ما صلاحیت داریم که یې را تغییر بدیم یا شکل دیگه ایش و نه هم مسئولیت داریم که از ما سوال شد در حوادث طبیعی حوادث طبیعی مثلا زلزله میشه توفان میشه بارانها میشه برف میشه در بعضی از توفانها بلکها انسان از بین میره. در این حوادث طبیعی ما چی میتونیم؟ ما صرف میتونیم که مطابق خواست خود به خاطر بقای خود از دیدگاه مهندسی تعمیرا رو ساختمانش را تغییر بدیم که اگر زمین لرزه میشه مقاومت داشته باشه. اما ما این زمین لرزه را مانع شده نمیتونیم. ما میتونیم که به خاطر از اینکه این طوفانی که میشه ساختمان را به شکلی بسازیم که در مقابل طوفان مقاومت بکنه. اما مانع طوفان شده نمیتونیم بنا اندر حوادث طبیعی نسلاحیت داریم و هم مسئولیت در فلانی زلزله ما تنها مسئولیت از خود داریم اگر ما در انگام یک زلزله میتونیم که یک چند نفر مصیبت رسیده را, را کمک بکنیم چون میتونیم پس مسئولیت هم داریم باید این مصیبت زده ها را را شمکاری بکنیم اما در خود این حادثه ما نمیتونیم یه حادثه رو تغییر بتیم وقتی که میشه میشه میشه, میشه کشفش کنیم به قایبی بگیریم میشه کسایی که توی منطقه هستی راه بریم شما از اینجا فرار کنین به یه منطقه که ایرمی جهادسه طبیعی میشه من اینجا ارستم ما هیدرومتولوژی هستم ما میتونم این کارو بکنم اما حادثه رو من تغییر نمیدم میتونم بنوهم اگر توی طوفان 1 لک نفر باز میمره از من خداوند پرسان میکنه چون من دیگه دستسی ندارم اما تدابیر به قیبی خودم گرفتیم. در ساختمان انسان ساختمان انسان یا مثلا آناتومی انسان آناتومی و فیزیولوژی انسان خب از اتقاه دین مقدس اسلام ما در اناتومی ساختمان طبیعی یک انسان ساختمان فیزیکیش اناتومیش یا فیزیولوژیش صلاحیت نداریم اگر من رنگ من سیاه هست یا سفید است، یا مقبول هستم یا بد قواره هستم یا قدم پخش یا قدم بلند است، هست بنا در ساختمان فیزیکی تو یا ساختمان فیزیکی خود من هیچ نقشی ندارم و تو هم نقشی نداری بنا اگر ما یک کسره به خاطر ساختمان فیزیکیش مورد تمسخر قرار میدیم در حقیقت ما سر رسم خنده نکردیم سر رسام خنده کردیم اگر من به خاطر قد بخش تو یا به خاطر جسمی کنم بنا یعنی گناهی بزرگ رو تو تحمل شدیم چون اینجا تو نقش نداشتی ما بیرون رانندگی و قال را خداوند میگه ما ساختمانی فیزیکی و بیرونی تو رو نمیبینیم. امچان زبان تو رو هم متوجه نیستم که تو با کدام زبان صحبت میکنی. ما درون را و حال رو ما داخل تو رو میبینیم. عقیده تو میبینیم، فکر تو رو میبینیم، اندیشه تو رو میبینیم، ایمان تو رو میبینیم، باور تو رو میبینیم. نیت خیرسانی و ضرر رسانی تو رو میبینیم. ما درون را و حال رو که تو چی میکنی؟ حالت فیزیکی تو چه قسم است؟ تو چی کار میکنی؟ به مردم کار میکنی یا به ذره بشان؟ مردمت کار میکنی یا به ذره در خدمت انسان قرار داری یا به ذره برای انسان قرار داری؟ بنا انه کس که در چهری که صحبت میکنه از این خاطر در قواری ازو در ساختمان فیزیکی ازو این انسان با خداوند در جنگ است از این خاطر در زمان پیغمبر سلام یک انسان است که این انسان سیاه پوست است و انسان دیگه این سفید پوست است اینال این انسان سفید سیاه پوست حضرت بلال خداون ایره میگه برو در سر بام کعبه بالاشو پیغمبر سلام برش میگه حضرت بلال میده در سر بام کعبه بالا میشه با وقتی که در سر بام کعبه بالا میشه برای ما چی درس می از این ما چی درس می گیریم؟ یک کس احساساتی برخورد میکنه. ما تو در داخل پانتون بحثای ما آکادمیک است. تا واقعیت ها را به شکل درست بفهمیم. و باز وقتی که گبه درست بفهمیم مطابق از واقع عمل بکنیم. حضرت بلار رو سر بام بالا میکنه بر ما شما یک درس است که ما مسلمان ها کعبه رو پرستش نمیکنیم اون دو که بطه پرستش میکنه سر کلی اون دو بالا شده نمیتانه سر کلی بود. بخاطر از این که چی میکنه؟ پرستش میکنه پس ما میمیم که خانه کعبه عبارت سنگ و خشت و گل و تکیس که مخلوق هستند. خانه کعبه نماره صحت داده میتانه خانه کعبه سنگ و من به کعبه سجده میکنم و نه کعبه یا حجر الاسود بر ما کوم نفع ذره رسانده می تونه ما حجر الاسود منایسی که پیغمبر خدا یک بوسه کردم مگر بوسه می کردم مثل که سر یک اولاد خدا می میکنم. اما منایش این نیست که مثلا من با کعبه سجده میکنم. از این خاطر حضرت بها پیغمبر مگه برود سر بام کعبه که مردم بفهمان که کعبه معبود از اینا است. که ورس صرف ما روی خدا به از اینکه مسلمان ها با یک طرف در قبله باشند در نماز صفشان معلوم باشه متنه که یکی این طرف نماز بخوام در حالی که در قرآن میگه که فاینما توالو فسم وجه الله هر طرفی که رویت دوروتی خداوند تو را میبینه اما به از اینکه ما متحد شویم یک پارچه شویم کل ما یک سمبول توحید اونجا هست اما ما که هر یک خانه منایسی یک ساغ یک چوب پرستش نمیکنیم و در جمله ما خدایی یگانه را پرسته از این خاطر عزت بلال سر بام کعبه بالا میشه اما اگر تو برید سر شانه یک بود بالا شوی اون دوها را میکشم چون اون دو بوده پرستهش میکنن بگید تو سر شاره معبود ما بالا شدی. درس دیگه که از رفتن عزت بلال در کعبه کهبه بر ما رسول خدا میتا که شما از این بگیرین که پیش خداوند چهری ظاهری کس مطرح نیست بناهان سیاه ترین انسان میتونه که سر مقدس ترین جای بالا شود بناهان ارزش بلال از کعبه که در بلندتر است ارزش تو مسلمان از خانه کعبه که در بلندتر است پس تو باید برای انسان اونه مقدر ازت قائل باشی به ما اندازه که به خانه کعبه تو ازت قائل استی و تو منعیس مسلمان نباید در چهره کس و در ساختمان فیزیکی و آناتومی ازو جر بحث زیاد بکنی چون خدای عزواجل است که هر کسی را به هر شکل جن ذات خدای عزواجل است که مسور است تصویر کننده بران تصویر خداون جور کرده و ای خدای عزواجل است که کی را با کدام چیره بناهن او ابو لحب سفید قواره سیصلانان با دو زخ داخل میشه و, و او بلال حبشی سفید پوست ازب پیدا میکنه و ما شما میگیم رضی الله عنه این حاله ایم موضوع چیست؟ اینجا موضوع سر چی است که ما وقت سر بحث قضا صحبت میکنیم پس در ساختمان فیزیکی خود ما کدام صلاحیتی نداریم بران خداوند پرسان نمیکنه چرا چشم تو تنگ از چشم از کلان است چون ما نه صلاحیت داریم که چشم خدا خود ما جور بکنیم و نه هم از پیش ما خداوند مهربان است چیزی که صلاحیت نداریم از هم نداریم نقطه بدیازی که ما شما در اون صلاحیت و مسئولیت نداریم موضوع اختیار قوم زبان مادری قبیله کشور قاره و غیره و جنس اینال ما در قوم خود اختیار نداریم که ما کدام قوم اختیار بکنیم ای اختیار اختیار خداوند جل جلوه است. وقتی که من طفل خرد بودم سنم خرد بود و در خانه مادر و پدرم تولد شدم من نداشتم که اختیار بکنم که من در خانه پشتون باشم در خانه تاجک باشم در خانه ازاره باشم در خانه افغانی باشم در خانه اروپایی باشم بناهن ای که در کدام قوم در خانه که در کجا در کدام کشور در کدام کار اختیار خداوندی است اگر مادر من پشتو زبان بود برای من گفت که چنگه ای؟ هم گرفتم چنگه اگر مادرم من بود گفت قندقس است من هم میگم اگر اردو زبان گفت بود کله میگم تیک ها اگر داری زبان بود چطور استی؟ اگر عربی بود گفت کیف حالو کرد؟ اگر انگلیس بود با می شکل اگر گفت بونجو ما مگم بونجو ایناله در اختیار قوم قبیله زبان مادری من داخل دخل نداشتم اگر یک کس میخیزه یک حزب جور میکنه که مربوط به قوم میشه و میخیزه میگه که قوم منہ نسبت به قوم تو بهتر است یا زبان من از زبان تو بهتر است یا ولایت من از ولایت تو بهتر است یا کشور من از کشور تو بهتر است مثلا قومی و زبانی و نژادی که حالا فعلا زیاد مطرح هست دشمنان استاب کار رو میکنن پس ما بر از شما یک برادر عزیز جنگ تو با من است جنگ تو با خداست جنگ تو با کیست با او کسی است که مرا را خلق کرده تو اگر میگو که قوم خراب است یعنی که خداوند علی از بلا سرمه ظلم کرده مرد قوم خراب پیدا کرده تو اگر میگی زبان من خراب است یعنی خداوند متعال جل مر مرد این خانه با این زبان مادری اگر خداوند احیانا عریضه من میتارستم بتم بخداوند میفتون خدای من را در کجا پیداید کنم میفتون خدای من را پالوی خانه کعبه که پنج وقت نوازم هم در الله شریف بخانم موتر 2009 م داشته باشم تیاری شخصی هم داشته باشم خوب لکس لکس بگردم هم بوتای ما هم یک هفته زورت نشه که رنگ شون تحصیلات عالی و دکتور هم داشته باشم ما بیجن اما وقتی که خداوند مطالمر در خانهی که پیدا کرده که مادرم دری زبان پدرم پشتون بعض قوم مزبک، مزبک بعضی قوم ما مزاره ما رنگ رنگ از هر چمن سمن است. اینوال وقتی که خداوند پیدا کرده پس پشمه پشتو دری ازبکی تمام زبان ها که هست زبان است و من با او گرد می زنم خداوند تا رو در کجا پیدا کرد؟ از این خاطر اونو ابو لهب قراشی هاشمی مکی قوم پیغمبر چهره بسیار زیبا در دوزخ میره اونو بلال همشی که نه هاشمی بود نه بود نه مکی بود حتی آزاد نبود غلام بود حتی سفید نبود سیاه بود اونو خداوند بسیار عزت داد و پیغمبر خدا گفت در سر بام کهبه بالاشو بعضی از کسایی بودن که سر پیغمبر اعتراض کردن که تو پیغمبر خدا یک کسی را از یک خانواده مشهور از یک قوم بسیار بزرگ اختیار نکرد تا که بخیر سر بام که هبه بالاشا و نخستین اعلامیه حکومت اسلامی را در فتح مکه بر مردم اعلان بکنه پیغمبر صلی اللہ علیه فامید گفت شانه و برشان گفت که ای مردم شما بفهمین که انسان ها در مقابل خداوند مثل دندانه های شانه هست لا فضل لعربین على عجمی ولا لعبید على اسود فرق نیست عرب بالای عجم و سفید پوست بالای سیاه پوست کدام برتریت نداره کلو من آدم کلو شما اولادی آدم علیه السلام هستین و كلكم من تراب واصل كل ما هو شما اصل ما و شما که پیدا شدیم از آدم علی صم پیدا شده از خاک است و علی که ما و شما پیدا همشیم اگرچه از نطفه پیدا میشیم لکن امین نطفه هم اساسات خود از خاک میگیره از خاک تغذیه میشه اگر غذا از اساس خاک است اگه شیرو میخوری اونمو <تصفح> ایوان رفته کا خورده و بالاخره کا از خاک تغذیه شده و بالاخره اونمو اساستان امو خاک است بس از نگاه اختیار قوم و قبیله و ایگپا ما اختیار قوم تو و اختیار قوم تو و اختیار زبان مادری تو ایک مربوط به خدای عزواجل است از خاطر انسانی که در یک کار دست نداره ما چرا سالوز تولد خدا جشن نمیگیریم به خاطر ازی که در تولد خود چی نقش داشتیم تو چیزی را جشن بگیی که تو در دا نقش داشتی تو مثلا میتونی در استقلال وطنت نقش داشته باشی چی کردی بر استقلال وطنت؟ تو میتونی در رساندن علم و دانش و تحسیس یک مکتب و یک مدرسه و یک پوهندتون نقش داشته باشی تحسیس کردی کدام دارالحفاظ؟ تحسیس کردی کدام پوانتون یالله تجلیل کن اما ای که تو چه وقت تولد شدی؟ ای خو کارتون است. ایخو کاری خدای ازدوجل است. پس کار خدا رو بان به خدا سوال نمیشی از کس پرسان نمیشه که قومت چیست پسرم در تو, را، تو را در قبر نپرسند که پدرت کیست گویند عملت چیست الان ما در قبر پرسان رو ما که پدر تو کی هست از کدام خانواده هستی نه پسر نو بابدان بینچ هست خاندان نبوتش گم شد سگ اصحاب کهف روز چند پهی نکان گرفت و مردم شد در قوم و قبیله و در زبارت دیاید بازی نخو اگر سید بودن افتخار باشه که اولاد پیغمبر هستی بچه نو هم اولاد پیغمبر بود لیکن بابدان بین از خاندان نبوتش گم شد بسیاری کسایی که بی بی فاطمه تا زهران نمیشناسند، می میخیزن خوب کلان مولویست خوب لونگیش نام خدا که قواره و چپنش لکن بی بی فاطمه را نمید. میگه دخت گرانبهای پیغمبر بود نه بی بی فاطمه خاطر از اینکه دختر پیغمبر بود ایزت را فیدا نکرد. بلکه چون پیروه ست فیصد پدر خود بود یعنی در خطی که پدرش پیروه در خط تقوی ایمان. دیده اون خط ست در حرکت بود. چون پیغمبر خدا برش گفت که یا فاطمه تو بنت محمد این. برش گفت ای فاطمه دختر محمد اعملی لنفس که بر خود خودت کار کو، اینی لا اغنی عن که من الله شیعن. من نمیتونم میتونم که اگر تو مشرک شوی تو بیدین شوی تو غیر از خدا کسی دگیر عبادت کنی باز ما بخیزم بخاطر از اینکه دختر پیغمبر سیترا نجات بتم گفت برای مسائل اخروی در دنیای درست اما در مسائل اخروی اینی لا اغنیان که من اللهی شیعه من بر تو چیزی فایده کرده نمیتونم خودت برای خودت عمل کن بنا انبی بی فاطمت زهرا اونم قدر عفیف بود که. حتی در وقت مرگ خود برای مردم نصیحت میکرد و وصیت کرد که حتی مردی مرد روز دفن نکنیم که امی جسد مردای نامحرم نبینن مرد شو دفن کنیم و در تقوای خود آنقدر پیش بود که از هر زن دیگه کرده ای در تقوا و در ایمانداری و در وفاداری و در خداشناسی و در عبادت خداوند یک وقتی میگه حتی شانیش از این که عوه آورده بود، زامت کشیده بود، دستش کلش به تکلیف بود، او جه داد زیاد غلام آمده بود، پیش پیغمبر خدا آمد. تقاضا شد که به این دخترت یک چی بته؟ یک غلام بته که کار کنه بوده؟ پیغمبر خدا گفت بچم، از این غلام کده برای تو چی خوب است؟ که خواه کرد بگو سی و بار بگو سبحان الله، سی سی بار بگو الحمدلله و سی و چهار بار بگو الله و اکبر و بایی تو استراحت کو ای از غلام کده بر تو خوب است چرا که غلام یک بیس سال زندگی تو خدمت خواهد کرد لیکن او در روز بدردت میخورد که فی یوم این کهانا مقدار خمسین الف سنتین میمات دادون در روز که یک دوزش پینجا هزار سال است بدردت میخورد پس بی بی فاطمه در زندگی آجیزی در فقر در بیچارگی در ناتوانی در تحمل مشکلات در عبادت زیاد در تقوی کلی ایچیزها از سر خود قبول کرد تا که فاطمه فاطمه شد تا که فاطمه فاطمه شد پس ایناله پیش خداوند متعال جل جلوهو ارزش انسان در نسب و در قوم و در فلانی و در فلانیش نیست ابو جهر ابو لحب هاشمی، قرائشی و مکی و فلان و فلان و فلان و فلان, و فلان, و فلان در نصب چندون کت پیغمبر خدا کاکایش هست دیگه نسب دومیش با اون پیوست هست پدر کلان های پیغمبر پدر کلان هایش هست قومش قومش هست تایفیش تایفیش هست قراشیز آشمیز چطور هست ولی با وجود عزیز قرآن میگه سیاسلا نارن کجا داخل میشه؟ داتشو دوزخ داخل میشه این حاله موضوع دیگه که در اون انسان مثلا اه, صلاحیت ندارد پنجمیش است که صلاحیت نداریم ما انسان ها موضوع پنجمیش موضوع اختیار پیامبران ملائکه ها امور که مربوط خداوند می شود چی مربوط خداوند متعال میشه کی پیغمبر باشه زبان کتاب خداوند کلام زبان باشه ملکه ها چی وظیفه داشته باشن؟ کی به با جنت بره؟ کی به دوزخ بره؟ کی جنتیست؟ کی دوزخیست؟ این مسائل کار خداوند است. ما مجبور هستیم اینو چیزی که خداوند تصمیم کردو بپذیریم. بناینده ما نه صلاحیت داریم و نه داریم. در روز قیامت از پیش ما پرسون نمیشه که چرا زبان قرآن عربی بود؟ ما میم خداوند اختیار کرد، ما هم قبول کردیم چرا مثلا زبان کتاب قبلی عربی نبود ما میگیم اختیار خداوند بود چرا مثلا اینقدر قدر در اینجا آمدند فلانی در اینجا آمد ما میگم اختیار خداوند است ما ایمان داریم بنام در چیزی که احکام خداوند است بگیم سمعنا و اطعنا شنیدیم و اطاعت کردیم و در این امور نه از ما سوال میشه نه سلاحیت داریم و نه هم مسئولیت داریم. چون این رحمت خداوند است. به چیزی که صلاحیت نداری در مسئولیت نداری. خلاص. این حال وقتی که از مسائل چیز گذاشتیم، قضای تکوینی میبه موضوع دیگه است که قضای تشریعی است. در قضای تشریعی یعنی قوانین اول در قضای تشریعی کدام مثلا هیچی حکم دارن در قضای تشریعی فیصلی خداوند هست. فایصله فایصله الله جل جلاله است یک دوم چی است فایصله الله جل جلاله است جل, جل جلاله جل درستش چی قسم است که بگویم جل جلاله جلالوه جللا جلاله جل فایصله الله جل جلاله است لکن در مساله قضای تشری با اینجا اختیار انسان است برای انسان چی داده شده؟ اختیار داده شده. حکمش چیست؟ حکمش. حکم آن چیست؟ مسئولیت است. به نان وقتی که در قضای قضا تشریعی خداوند فیصله کرده؟ بر ما تو اختیار داره خداوند بگه این فیصله ای است اما تو اختیار داری که چی میکنی؟ ولی چون اختیار داری تو از اختیار چی داری مسئولیت داری مربوط کدام مسائل میشه قضای تشریح اول ایمان توحید خداوند فیصله کرده که شما خدای یگانه را پرستش کردیم وقف عرب بکر اللہ اله الله خداوند فیصله کرده که غیر از الله خدای دیگه نیست محبود دیگه نیست که شما او محبود پرستش بکنید پس شما باید الله جل جلوهور پرستش بکنید فیصلی خداوند است لکن برای انسان اختیار داده که تو خدا را پرستش میکنید یا نمیکن اختیار داده خداوند فیصله کرده که اعمال صالحه بکنید خداوند گفته که شما ما برای اعضای بدنه دادم پس شما باید اعمال نیک بکنین ولی در اینجا ما اختیار داریم که امی اعمال نیک خوده اعمال نیک میکنیم و یا اعمال بد میکنیم پس اختیارش با ماست اینال وقتی که ما در انجام اعمال نیک صلاحیت داریم که اعمال نیک بکنیم یا نکنیم چون فیصلی خداوند است که باید چی کنین؟ اعمال نیک بکنین. اما مثل قضای تکوینی باره نیست. بلکه برای انسان چی داده شده؟ اختیار داده شده. پس تو اختیار داری که اختیار اعمالت در رشتی کدام رشته را انتخاب میکنی؟ یک نفر انجینیری انتخاب میکنه؟ یک نفر اقتصاد اختیار میکنه؟ یک نفر میره رقاستگری انتخاب میکنه؟ یک نفر میده رشتش دوزیست او هم یک اختیار کرنه یک نفر جادوگری در اختیار میکنه یک نفر فالبین است. بناهن در اختیار رشته هم بر انسان اختیار داده شده لیکن خداوند گفته شما رشتی رو انتخاب بکنین که به نفع خودتان به نفع مردمتان به نفع جامعهتان باشن تو کاری بگو که به نفع دیگران باشن اما اختیار داری اگر داشتی زشته هم این تو اختیار میکنی خداوند مانید نمیشه چون برد اختیار داده صلاحیت داده پس مسئولیت هم داری اختیاره طرز زندگی چه قسم زندگی میکنی؟ زندگی شرافتمندانه میکنی؟ و یا زندگی خراب میکنی؟ خداوند متعال جل جلوهو بر تو اختیار دادن پس تو چگونگی زندگیت کیفیت زندگیت خودت اختیار کن رئی ساب وقت آمدن را وقتفتنی مدیرک بازی نخوری؟یه کلش اکثر اسیس میخوای خدا به خودم نشان بدهی؟ آ ریی خدا بسیار مصوب نشان میده. رئیس ساب زیاد آدم است خل است باور توزدم روشان ررفتم کرا رو خ و برییس سید او گباشه چی میکنی؟ کی؟ ق دا که رئیس شود؟ بابا این دکه هم را این چیزو نمیتانه مدیر صای بای مخترم اگر چیزو نمیتانه مزیریت خود را خود میکنه دیری کی گره؟ گه تلیش نداشت، نگه تلیش می‌داشت. حالی چی میومد؟ خویم خویف از دیگر. خوب پکار کردی سه. آخر میش نوشیدی السلام علیکم، دو فرمین، زیاد بیخیرین. شما چی؟ چیستی خرما وقتی شما با غیبت کردن اون تمام اعمال نکته ها بر ما را ون میکنن. ما میخرم ما را وردم که بخورین انوس. زیادتر انرژی بگیرین و غیبت بیشتر بکنین وره این سب شما با گوش کردن به گپای از اینا و به این غیبت خودم در این گناه شریک کردین شما بخورین تا که شما انرژی گرفتن اینوز زیادتر, ای ای زیادتر با گپای از یا گوش بگیرین روان باهیت نمیشه چون وقت اختیار داره صلاحیت داره پس مسئولیت هم داره اختیار طرز زندگی چه قسم زندگی میکنی زندگی شرافتمندانه میکنی ویاش زندگی خراب میکنی خداوند متعال جل جلاله بر تو اختیار داده. پس تو چه گونهگیه زندگی کیفیت زندگی خودت اختیار کن. با روش انسانی زندگی میکنی یا به شکل شیطانی زندگی میکنی؟ لکن خداوند فیصله کرده که نه خیر تو باید مناسی یک مسلمان، مناسی یک انسان با شخصیت، مناسی یک انسان عالی تو باید زندگی بکنی. اما اگر زندگی نمی کنی اختیارش داری ولی مسئولیت هم داری بس واضح شد برای ما شما قضای تکوینی و قضای تشری حکم قضای تکوینی چی بود؟ نه صلاحیت؟ نه مسئولیت حکم قضای تشریحی چیست؟ هم صلاحیت؟ هم مسئولیت ایناله مهم سر قدر اصلا خود تقدیر چی رو میگن؟ تقدیر اندازه کردن میگن اینال قدرت چی قسم تعریف میکنن میگن خلق اشیا و حاجات چی مانا اینال خداوند یک چیز رو خلق کرده او را اندازه کرده چی مانا میگف؟ چی مانایی گفت؟ یکمکه مانا بسیار واضح است اگر آدم درست مثلا سی در ما شما مسلمان ها عقیده داریم بگیم والقدر القدر و شرهی من الله تعالی یکی از پرسان میکنه اندازه خیر و شر از جانب خداوند است بله اندازه خیر و شر از جانب کی است از جانب دهید دو مثال میتن ما یک مثال که تو کامیاب میشی یا ناکام میشی در صنف اندداه کامیابی بلاکی تو رو کیت این کرد پانتون پا تع کرد یا نکرده. به اندازه کردن خیرشر از جانب به پا پانتون هست نیست؟ پانتون پا فت که اگر چه نه ناکام هستی اگر صد بردی اول رسی پس اندازه ناکامی و کامیابی رو کی این کرد پانتون پا یک کامیاب میشی یا ناکام میشی پانتون پا کردید قرض نداره بر تو چزده که تو باید خدا کامیاب میکنی یا ناکامیک.امید دیه؟ یعنی؟ مثلا خداوند متعال جلجالهو جمشد این دست جمشید است خداوند برای جمشید دست داده اینال در دست ازی خداوند برای ازی صلاحیت کارهای خوب هم در دست ازی داده صلاحیت کار رو دست ازی داده. میتونه از دست کارهای خوب بکنه و همه از این دست خود کارای چی بکنه خراب بکنه اما اختیارش به دست کیسته؟ است به دست خود جمشید است مثلا مثلا که یک مثال قومه برطان بگم بازه این مثال بسیاری کسا خوب واضح میفین مثلا یک, یک شرکت از شرکت وسایل آشپزخانه. یک کسیش وسایل آشپزخانه خانه می سازه این می یک دونه کارد می سازه. خالد کارد ساخت کارد کی ساخت خالد, خالد، کارد ساخت و گفت برادر اینی کارد ساخته این شما از این مثبت استفاده کنین کتزی پیاز می ده کرد کتزی در خانه استفاده بکنین کتزی یک عاشباس خانه از این و زبح همی کنین و شکل درست زبح ها کنین از این کارای مثبت بگیرین. اما یک نفر احمد رفت این کارو کار, خ... کار خرید و ای کارو گرفت در شکم یک گوسفند در آورد در می رود گوسفند بود صد تا شکم گوسفند کار این اول پلیس احمد گرفت پلیس احمد گرفت احمد میگه تو چرا ای کارو کردی میگه من هم علامات داشم خالد چرا کار ساخت میگه تو صلاحیت داشتی یا نداشتی خالد کارد ساخت از این کارد هم مثبت استفاده میشه هم منفی بناان صلاحیت مثبت منفی رو در کارت خالد داد اما اختیار استفاده را کی است؟ دست احمد است پس انال تو نمیتونی که گناه خدا به دوش احمد بذاری خداوند متعال جل جلوه بر تو دست داد دهیده تو تو صلاحیت هست استفاده مثبت و منفی. بدست عزيز صلاحيت مثبت هم است منفی هم است پس ايناله دست عزيز رو خداوند ساختن و اي صلاحيت دست عزيز هم خداوند داده كه عزيز سيميتان كم مثبت استفاده كنه اما اختيار بر خود عزيز داده ايناله عزيز خدا درجي مكنه اگر اوزه که خداوند خلق کرده و به اون صلاحیت داده بازدمو هم خداوند متعال به اساس مهرباني خود اعضای ارادی هست و غیر ارادی در چیزی که اراده نداری مسئولیت نداری قلب تو شب چقدر کار کرده چقدر خونه بعد اگه اعضای بدن رسانده تو نمی غیر ارادی است. پس در روز قیامت ملائکه نشطه نمی کنه که قلب از این شب چقدر کار کرد چون تو نسلاحیت داری و نه هم مسئولیت داری میدی تو چه قدر کار کرده؟ وجود تو مثلا داخل مغزهای استخوان تو چه قدر خون تولید کرده؟ اینال جاهایی که تو اراده نداری باز مسئولیت نداری اما دست تو چشمت تو تیز چشم خداوند بر تو خلق کرده که با چشم مطالعه بکن بخوان درس بخوان استفاده بکن اما تو از چشمت غلط استفاده میکنی باز ایجا نمیتونی خدا براعت بتی بنا ان خیره و القدر و شریهی من الله تعالی ما میریم که مصرف جان و القدر اندازه خوبی و خرابی که برای دست تو داده شده همی صلاحیت از جانب خداوند است ای دسته تو خدا داده و ای که از دستو چه قسم استفاده میکنی این هم صلاحیت برای که استفاده کار بکنه خداوند داده اما اختیارش باز برای تو داده دیگه تو مصفت استفاده مصفت با میدین مانای و القدری خیریه و شدیه من الله تعالی اندازه از جانب خداوند است صلاحیت از جانب خداوند است لکن اختیار برای دوست اگر اختیار ندادت باز مسئولیت هم نداری اما وقتی که اختیار داری سیزده اختیار داری آلمان سلمان خداوند زادم اینه خفه کنم الان وقتی که من از خود غلط استفاده کردم خب باز من باید خودم علامت کنم چون خودم اختیار دارم سهی شد نه؟ بعضی از سوالهایی میشه در مسائل قضا و قدر که بسیاری کسا به تشویش میشن مثلا یک کس میگه میگه خب میگه اعمال من نوشته شده کلش نوشته شده مشتاق روز جمعه و جمعه ساعت سیونی مجه از خواب میخیزه به اختیار خود وضوی میکنن به اختیار خود به مسجد بره نماز میخونه، به اختیار خود می 15 دقیقه 20 دقه تلاوت قرآن شریف میکنه، بعضی میه مثلا کتاب های خودمو مطالعه میکنه، باز میه چای مینوشه، باز میره بر فامیل خود خدمت میکنه. اینا رو در اینجا میگه اعمال نوشته شده. امام اعظم ابو حنیفه میگه که اعمال انسان بالوصف نوشته شده نه بالحکم. بالوصف چی معنیه و بالحکم چی معنیه؟ الثلاث عربی سره بود شما با فارسی بفهمید. میگه نشته شده که مشتاق بدل خود روز جمعه سات سینیمه از خواب خیزن توصیف میکنن بدل خود وضو میکنن بدل خود نماز میکنن بدل خود تلاوت قرآن میکنن بدل خود تمام احکام خداونده سر خود تطبیق میکنه اما بل حکم نشتنه شده که مشتاق روز جمه باید بخیزه باید وزو کنه باید نماز بخانه باید کنه. اگر باید میبود و مشتاق صلاحیت داده نمیشد باز مسئولیت نداشت اینالو که مشتاق احمد از نماز خود ثواب میگیره چرا ثواب میگیره چون اختیار داره و خداوند اینمی کارهایی کهی میکنه خب اینالو سوال میشه که خداوندیره چون تو میفامید ما میگیم باید علم خدا رو با علم خود قیاس نکنی چون ما توحید صفات خواندیم که صفات خداوند رو با صفات خود چی نکنیم؟ مقایسه نکنیم. علم ما ضرورت به وسایل داره، تجربه داره. من چه وقت نشستم میگم که مشتاق احمد نماز خوان، من امشب صبحی امرایش هستم. میام بر شما میگم که مامورای مشتاق بودم، وضو کردم، نماز خوان، روزه ای کار کرد این کار کرد پس من بعد از تجربه امیگه گفتم خداوند مطال به این تجربه نیاز داره یا نداره؟ نیاز نداره چون عالم غیب است خداوند با علم خود اینمی تلویزیون را را که معالی دیدم خداوند ضرورت به این تلویزیون نداره قبلا می که اینمی نفر با اختیار خود در اینمی وقت اینمی کار را میکنه بس اینجا بین علم انسان و علم خداوند باید فرق بکنیم یک حادثی قتل میشه حادثی قتل میشه سه نفر هستن خبرنگار سه تلویزیون است شما بین فکر کنید سه تلویزیون است بین مثلا این سه نفر هستن عرصه سه خبرنگار هستند این خبرنگار تلویزیون الجزیر است. وسایل بسیار پیشرفته داره دمون لحظه که آدسه میشه او رمطه لایف فیلم برداری میکنه سه ایسی آفل ای از،, از تلویزیون افغانستان است. تا که پیدا میکنه و تا که امر میگیره و تا که میره آدسه رو میبینه وقت گرد خلاص است این امون لحظه گزارش داد и 5 ساعت بعد گزارش شد این تاک از اختراون تلفن میکره تاکت sagen wir sao تاک بعدش اول میرسه تقریبا سه روز وقت ازیره گیرم سه روز بعدی خبر میده پس انال در بین خود انسان ها هم در علمشان تفاوت آمد نامد او امکانات زیاد داشت علمش قوی تر بود وسایلش قوی تر بود زود خبر داد این متوسط 6 ساعت بود و این سه روز بود انال بفرمایید شما بشن در علم انسان ها هم تفاوت است. امکانات انسان ها هم تفاوت است. پس اینال ایسه نفر که ای سی حادثه را گزارش شدادن ای سی او داخل داشتن یا فقط گزارش هست دیدن و کردن اما خود قاتل نقش داشت خود قاتل تصمیم داشت خود قاتل ایکار کرده بود پس اینال ما نمیتونیم ای سی نفر باید شما چرای گزارش دادیم اینال عین گزارشی که حال آل دادن ا آدسه قاتل خداوند متعال جل جلوهو ضرورت به وسایل نداره با علم قدیم خود میفهمه، با علم خود میفهمه که فلانی قاتل فلانی وقت با اختیار و با اراده خود فلانی نفر این کار میکنه مثلا یک نفر از قطار تیر میشه سر قطار رو میبینه اما یک نفر دیگه در اک تعمیر صد منزل از زندگی میکنه از منزل صدام هم سر قطار رو میبینه هم آخر قطار رو میبینه پس این که من دیده نمیتونم مشکل ما یک موضوع بعضی های دیگه سوال میکنن میگه یکی برادر یک کسی کشته شد اینمی این نفر که کشته شد ایخو تقدیرش همی ای قسم رفته بود ایخو عجلش آمده بود باید میمور پس قاتل چی گناه داره در این قسمت قاتل چی گناه دارن؟ اینال بگه در اینجا خیلی بازی چطور میشن؟ اینال مثلا شما سه نفر بیم؟ خب اینال این سه نفر هست اینال این سه نفر هستن من قاضی هستم دو سه ارسی از این نفر ها پیش ممیره. ما میره من ای سی نفر دوستیشان هم خوب خوانم متوجه باشین شما ای ترفیز ها شاید خب در محکمه راپور میگه که جلسه محکمه از نفر اولی پرسانش میکنم دوستیش خوانده میشه ای هم عرصی از یا مثلا از پیششان شدن برای ایرم قاتل معرفی کرده او قاتل معرفی کرده او, قاتل معرفی کرده, او قاتل معرفی کرده نفر اولی وقتی من پرسان میکنم در سال سهل میکنم تو چه کار کردی؟ میگه صاحب من در میسر بام عادت دارم شوکی خواب میکنم مقتول هم سایه ماست آدم بسیار خوب بود آدم بسیار شریف بود من کتش دشمنی هم نداشتم من همیخواستم او را قتل بکنم لیکن شوک از بام موادت دارم شب که خواب می کردم لود زدیم چطور شد که لوزم افتادم کایین نمی خوابم راست زیر بالکن اون نفر دیگه قرار هم تو خواب بود مگه قاضی سای محترم من صاحب قتل نکردم من علاقه من قتل نبودم نمیخوام اون رو بکشم آ خلاص قاضی فایسلا میکنه که این نفر قصاص نمیشه چرا قصاص نمیشه به خاطر از اینکه در قتل ای قصد نداشت شما بفرمایید برای دادید این اثر دومی نفر دومی میگم برادر تو چی کردی؟ میگم والا صاحب دو وقتی باز میکنم پولیس و ساروالی ها میگم چی کردی؟ میگم والا صاحب قاضی صاحب موترم من از خانه برامدم و موتر خدا گرفتم عرکت دادم آمدم تو دمینی میرا که متوجه شدم بیروبارک زیاد از خواستم برک بگیرم برک موترم اخرام فکی که از قم خراب کرده یا خودش خراب شده یا هر شکل که بود برکش خراب بود با در قسمت رسیدم از چند نفر کوشش کردم که کثر ندارم اوگاه نکنم اگه اتفلقاا بودش تو کاا بود بودی یا, بود یا, بود یا بود یا بود یا بود یا نشد خب بالاخرم ایران بادم که خدای چطور کم یک قسمت تو رسیدم دیدم که که گوجه سیچل نفر است از یا خ خلاصم دو اون طرف یک نفر بود بودهقدر که لغت زدم که من بره ه قرار کوش کردم نشد بالاخره اونرو نفره که خداوند ببخشش اوو رو داددم روی موتر برابر شد. و اون نفر کشته شد و شهید شد و خدا ببخشه و ما قصد نداشتیم گزارشو ترافیکام میگه که بله علمی نفره وقتی که ما رفتیم موترشو ماینه ما کردیم تقریبا پیش از حرکت کردن برکش خراب بوده و حادثه رو وقتی که دیدیم زیاد کوشش کرده و تایر موترشو فلانی فلانیشو کلش ما اندازه گرفتیم این نفر نمیخواستیره بزنند لکن با بسیار زحمت بالاخره امی کار از پیش شد برای این قتل خطا میگن خب تو خطا کردی؟ اشتباه کردی؟ اگر چی تو باید تو باید در اول وقتی که موتر چالان میکردی باید چک میکردی؟ سهل میکردی؟ چون تو امید یک سهل انگاری کردی تو باید یک مقدار جزا باید ببینی ولی کشتن نمیشی چون تو قصدن کسی رو نکشتی شما برین نفر سیومی میگم که خب برادر تو چی کردی؟ تو چرا اون نفر رو میگه والا صاحب این این مرد پیش من قرضدار بود میگه من برش گفتم که بچه یک لگ رو پیاره بتی او گفت که والا ندارم ببچه نکو بگه قرزه میگه گفت که ببرا ندارم بر شختار دادم قاضی صاحب وقتی شام دادم گفتم که تا روز جمعه قرزه میاری که اگر ناوردی با سایکو. روز ما وقتی که رفتم که مردکه پیسه ندار چون مام نمیدینه میتی؟ یا تو رو کشیده میتی یا یک دو سه چار صاحب نمیدونم چطورست چنانست ما مام زدمش فعی کردم سرش اینال قاضی فعی سلام که در اینجا تو قتل عمد با وسیله جارحه و اعتراف هم کرد و طبع عدلی هم میگه بله کتا نیم مربی کشته شده طبع عدلی میگه بله اینمی سلایزی بوده بله بله سنت شواهد کل چیز اکمیل میشه بالاخره برازی گفته میشه که تو باید قصاص شوید چرا که تو ای کار با قصدت کرد بناهن خدا خدای نخواسته تو آدم نیست خیر بشین شود فاهمی دین پس در مسائل قتل و پاک است، اختیار و اراده و تصمیم خود انسان دخیل است این که این نفر می مرد یا کشتر می شد یا وقتش بود او خوب بود اما تو چرا این کار کردی تو از تصمیم خود تو از اراده خود تو از قصد خود در مقابل از چی داری مسئولیت داری این ای شد مسئله قدر و القدری خیریه و شریح من الله تعالی و محاسبه از اون بعضی ها پرسار می که خیفایدی ایمان داشتن و قضا و قدر چیست؟ فایده چی است؟ این فایده ها بسیار زیاد داره. فایده چی که حضرت پیغمبر و حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما گفت کی باشیم؟ ما بر تو چند کلمه را یاد میتوم، او را تو یاد داشته باش. خب بالاخره در جمله کلمات چی بود که اگه کل دنیا بخوای برای تو zarar برسونه، zarar رسونده نمیتونه. چیزی که خداوند برات نوشتا کرده. اگر کل مردم بخواد برتون نفع برسن نفعی رفت سانده نمیتونه مگم چیز روی که خداوند برتون هم اشتر کرده رفیت الاغلام و جفت صحاف این وقتی که انسان عقیده داشته باشه که خدا هست که نافع هست خدا هست که برای من ضرر می نسان. پس هیچ وقت این انسان غلامی انسان دیگه رو نمیکنه. من استخاره می کنم اگری کار خوب است، شب اگر خراب خدا برا پس ما به هیچ کس غلامی نمی کنم به یقیده نیست که مثلا یک انسان میتونه که زندگی من رو از بین ببرن چرا که کسایی بوده که مثلا در زلزله ترکیه یک افتباد رفتن از زیر سنگا و از زیر خشرا و از زیر توتاهای سمت یک زن 70 ساله رو کشیدن یک افتباد زنده بود اما بیشتری جوان های خوب قوی برده بدن پس انسان غلامی کسره نمی کنه. انسان روهان آرام می باشه انسان به با قضای خداوند ایمان داره از این خاطر با راحت با آرامش با اطمینان با ایمان زندگی می کنه پیش کس غلامی نمی کنه از کس روزی نمیخواد از کس سوال نمی کنه پیش مخلوق رفتن یک تو بر من دختر بته یا بچه میتی چرا که می فهمه که از مخلوق هیچی چیز ساخته نیست اگه اگر ظاهرا یک سبب شود اما خدا نخواه از این خاطر انسان با ایمان داشتن با قضا و قضا وقدر روحان آرام می باشه اطمینان می داشته باشه ارتباط خدا با خداوند مستحکم می سازه به علم و با قدرت خداوند عقیده می داشته باشه لیکن خداوند متعال جل جلوهو یک نقطه را باید بفهمیم با وجود ازی که برما و شما اختیار داده و امکانات داده لكن خدای عزواجل ذات مهربان است باز پیغمبر سلام بیه که رفع عن امتی الخطأ و النسیان و مستقریه علیه میگه امتمان ما از اشتباه قرم برداشتا شده یعنی یا نمیشه در خطا یک نفر اشتباه میکنه اشتباهن تو فکر کرد که روزه نیست آب نوشیدی خداوند تا جزا نمیدم فراموشی است یک چیزی رو فراموش کردی فراموش کردی که نماز پیشین نبخونی اگر او نماز پیشین بی رفته رفته روز. امروز برابرستم این خلاص وقتی که فراموش کردی بعد نماز تا لکه خداوند تورا جزا نمیده مثلا اون قسم جزایی که وی با خدا من میخواستم در جماعت برم، این از اون پای نقتیر است در مسجد مخونو بجا نماز جماعت خوندنم شد کاش کشیده میشد خداوند میگنی خیر است اما یک نفر که قزدن یک مو جماعت نمیره، در صبح خوابتام قرار پیش تلویزیون شاوک مش تلویزیون شیشه واس صبحم نمازش از پیش رفته این علی یک مو این مرد قزدن به نماز نمیره، میره واسه تو مرد دل است منافقین هستی چرا کسی که یک ما قصدن دو ما قصدن در نماز جماعت خفته رو صبح نره این در لسه مرافق میره. اما یک نفر صحوان یا اشتباهن یا توانایی نذارن با حضور خداوند نیبخشن الخطأ و نسیان و مستو کریه و به یک چیز مثلا انسان نمیخواست یک کار را بکنن یک کسی بزور یک کار کرد او قصد نداشت او وبازی میکردی و رفیقت خبر نداره که تو روزه داری از اون گت بکنه می‌کنه یا روزه داره میگن فهمی که سی لیتر خوردی اینا علی سر تو بزور کاش اینا خداوند این جه تراون دو ماه که با جزا بینی با سر از دو ماه جزا نیست چون به اختیار خود نکرده یا مثلا یک نفر مریض است از بسیاری چیزا خداوندیره ماف کرده یا پیغمبر شما که روی القلم و ان از اسیک از دیگه هم قلم برداشت شده از کی میگه از طفل تا وقتی که جوان شود یک طفل خورده است اش سال نو سال 10 سال 11 سال 12 ساله, ساله, ساله, ساله. این تا وقتی که جوان نشده ملائکه روش نمی کنه. چون او طفل است خداوند ذات مهربان است اگر ده خالی دو هم پیدا شده باشه خداوند در دوزخ نمی پرته. چون طفل است به سن نرسیده وقتی که جوان شدی باز مورد محاسبه خداوند قرار میگه یا کسی خراب از دیوانه است تا وقتی که به خداوند کسی کس خوابه تا وقتی که بیدار نشه در خواب شکر بزن و هر طرف برو و هر چی که دلت شد بکن لکن ملایکا نشتا نمیکنه در حالت خواب قلم برداشتن هر طرف که یگان کس بیکی در خواب پرواز میکنه از سر کوش از میری چی خوش آدم میانش یکم طرفو خیلی تالیدار است بالا خود ایران میته تا پایین کل مردم زیر پایش ولی بعضی چیزا رو میبینن لکه قلم داشته شده پس رحمت خدای از وجل است که انسان در چیزهایی که اختیار نداره اراده نداره از توان خودش نیست اونجا معاسبه نمیکنه و در چیزی که اختیار داره، او را هم برش فرصت داده و از این خاطر بر دشمانهای خود ببینن، تجربه کنین سرسخترین دشمن خداوند بهترین موتر داره خداوند برش میگه تویر داشته باش میشه که امی نیمتهای خداوند در یاد بی سال سخت دشمن خدا خوب کافر ام از خوب خانه لکس داره خدا از مهربانی خود برش میاد میشه کی نفر توبه بکنه نعمت ها صحت خوب داره زندگی خوب داره موتر خوب داره آرامش خوب داره چوکی خوب داره همه چیز بشی پس رجوع بکنه آب و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تونانی بکفاری و به غفلت نخورید تا کی اک لغمانا پیدا کنی و اینه به خوشی بخوری موضوع قضا و قدر واضح شود برت نلان چیزاس مثلا نگان تو یک یک کار مثلا میخوای خوای بکنی بجای یک کس مثلا تصمیم می گیری نگان تام به اجازه مثلا تو وقت گفتن باید قضا خ... قضا مثلا تایید بکنی مثلا. یک کار بعد نه خوام بکنی مثلا من قضا مستوره یک نفر اومد پیش امام جعفر صادق امام گفت يا امام گه بله گفت اه... تو خدا سکول ول بتي بی که تو می مری یا نمی مری گفت که خداوند مری ام جان می خدا ر ام جان نمی کنم ادب خودمو خدا مرات میکنیم خلاص قزو اینکه بر ما چی نوشته شده این مصدور است بس ما با اندازه توان خود باید کار خدا رو بکنیم چون خدا هم برای اختیار داده اینکه مثلا چی نوشته شده چی نوشته نشده لیکن بر تو مسئولیت داده شده که تو باید یک حسابت پیش پیغمبر بسم گفتی چه کردی گفتم چطور باید بیرون اله کردم دهن اسلامی رو قبول نمی‌کنم چطور تاباسته برو کو باز به خدا توکل بکو یکی توکل است و یکی توکل توکل مثبت است و توکل منفی است توکل ی است که از دست وسیله است اینمی امی که تقدیلتا را کرده این امی خداونده تقدیر بر تو دست نوشته کرده تو کز دستت بخو تو خ خدا یک دنه حالو بالو خدا بیدانم پر تو خداوند نمی پرته تا صبح خوف خب کن چون خداوند بر دست داده از دس دست استفاده کو متوجهی هسته اینالی توکلیه هست که از اسبابی که خداوند بر تو داده ازی استفاده بکن که تو به جنات بری و توکل چیست که کار نکنی بکنی که من خرار به خداوند توکل تو، تو، نه تو، این توکل نیست این توکل, ای توکل است که کار نمیکنم برای من روزی داده شما توکل یه که کار بکنی و به خداوند چی کنی اعتماد و توکل بکنی که خدای اینی کار من رو خوب بگردن سهیس اینشالله روز خوش برای کلتون خداحافظی